در مورد عبارت دعا فهمیدید که در ایمان نیت مهمه و باور باید تقویت بشه کمیت عمل مهم نیست مگر باور با عمل و فراوانی عمل تقویت نمیشه چجوری این من نگفتم عمل ایمانزا نیست گفتم خدای متعال به باور نگاه میکنه به نیت نگاه میکنه در سنجش، سنجش انسانها ها مهمه لذا باید جنبید باورهامون همون رو کار تکمیل کنیم. تثبیت کنیم که راهش فقط عمله و عمل زیاد هم نمیخواد ما معمور هستیم به واجبات ترک محرمات اون هم در زمان حال زمان آینده که هنوز نیمده زمان گذشتم که نیست ما بین دو تا عدمیم. خدای متعال نسبت به اعمال گذشته میگه توبه کن. میگم توبه چیه میگه پشیمان شو. همین. نسبت به آیه هم که هنوز وزیفهی نداریم. نیمه ده که نسبت به این حالی که آنی که درش هستیم وقتی یه ای پیش میاد وزیفه انجام میده. اگه پیش بیاد یه نامحرمی از روبرو داره میاد زودتر جهتمون عوض کنیم. یک کاری هستش که بوی تورمت توش شدیده ترفش نلی، مقدمات و زمینه های گناه رو در زمان حال فراهم نکنیم خیلی کم و اما نتایجش خیلی زیاده خدای متعال ماها رو خلق کردی میشنسده مون میدونه چی خلق کرده پیچ مهره های قوی و زعیبش دست خودش بوده اگه عمل کسی جلو پا مون میگذاش برخواه به دلایل مختلف که یکیش تنبلیه یکیش هوا و حوثه نمیرفتیم دونباله عمل عمل کم بودشت جلو پا رو زیاد کردی میگه اگه گاهی برات حرام پیش میخواد بیاد مقدمهشو نچینی من تو رو بهش میدم در دنیا بهت رزق میدم خدا اینجوریه میگه پول میدیم اینا که پول میخوان، از من پول میخوان، بیا نگویم بیا خب، باید میکنیم؟ میگی چی بعضی کارهای حرام رو انجام نده هم همین هم بهت بصیرت میدیم، فرغام میدیم، رزق میدیم بگی کجا میگی؟ راست میگی بگو بگی ارزو خمه نیست و لای احتسب از جاهایی میدم که خودت باورت نمیشه و اصلا حساب نمی کنی رو اون موارد بهت پرغان و وصیرت می دهن بهت معیت با خدا رو میدن دهن الله مال متقین ده یا یازده سمره و فایده داره همین تقویه به معنای کمش یکیش فایده آخرتیه که ازلوفت الجنه تولل متقین خدا بهش رو برای متقین پراهم کرده در دنیام آسایش میده، آرامش میده میگی نه، امتحان کن